رامین تو کجایی هستی من شیرازی هستم خانواده من در شیراز است پدرت چه است پدر من پلیس است مادرت چه کار میکند او خانهدار است مادر من کار میکند او مترجم است پدر چه کاره است پدرم معلم است این عکس خانواده من است بله این آقا پدرم است او معلم است این خانم مادرت است نه او مادربزرگم است این خانم مادر من است و این دختر خواهرت است بله این خواهرم است. او دانش آموز است.